برلبه دنیا و آریان آن روز را به سگها استراحت داد اما روز بعد صبح زود از خواب برخاست و بلانه سگها رفت و در آن بامداد با درخشان سگهای شاداب را آزاد کرد و دوباره به بیرون دره و بالای تپه ها و به سوی مرز شفق راند و این بار کمانش را با خود نبرد فقط شمشیر و تازیانه اش را برد چون از لذت سگهایش به هنگام شکار حیولای تکشاخ خوشش آمده بود و احساس می کرد در لذت هر کدام از سگها شریک است در حالی که اگر اسب شاخدار را با انداختن پیکانی از پای در می آورد، تنها یک لذت منفرد وجود می داشت تمام روز دشتها را پیمود و اینجا و آنجا به کشاورزهای های پراکنده یا مشغول کار در کشتزار سلام می کرد و در پاسخ به او سلام می دادند. و برایش آرزوی شکار خوبی میکردند. اما هنگامی که غروب فرا رسید و به مرز نزدیک شد، کمتر و کمتر به او سلام میکردند. چون بروشنی به سوی جایی سفر میکرد که هیچ هیچکس نمیرفت، جایی که حتی اندیشه از آن دوری میکرد. بنابراین تنها میرفت، اما شادان با اندیشه های مشتاقش میرفت و از همراهی سگهایش خوشحال بود، و هم اندیشههایش و هم سگهایش، بر این تعقیب متمرکز شده بودند و بنابراین دوباره به سرحد شفق رسید به مکانی که پرچینها از میان مزرعه‌های های انسانها به درون آن میرفتند و دیگرگون و تار در شفق ناپدید میشدند با سکهایش نزدیک یکی از پرچینها ایستاد، درست در جایی که پرچین وارد سرحد شفق میشد، نوری که در آنجا بر پرچین افتاده بود اگر بتوان به چیزی در زمین خودمان تشبیهش کرد، شبیه ابهام مهالودی بود که وقتی رنگین کمان در یک مزرعه حساری را لمس می کند، بر روی آن دیده می شود. رنگین کمان در آسمان واضح است، اما انتهای آن در یک مزرعه پهناور به سختی دیده می شود. با این وجود، حضورش سبب پیدایش غرابتی بهشتی می شود که پرچین را لمس و دگرگون می کند، آخرین پرچین انسان ها در چنین نوری می‌درخشید و درست آن سوی آن مرزی سرشار از نورهای سرگردان و همچون شیشه‌ای شیری و مایع گرفته بود مرزی که هیچ انسانی نمی‌تواند ماورای آن را ببیند و هیچ صدایی از ماورای آن به گوش نمی‌رسد مگر نوای شیپورهای سرزمین پریان آن هم به گوش عده کمی اکنون چیپورها داشتند مینواختند و با تنین جادویی آهنگ نقرهیشان صد نور مبهم و سکوت را می شکافتند و گویی هر صدای مزاحمی را که در این میان به گوش اوریون می رسید پشت سر می گذاشتند. همانگونه که نور خورشید اسیر را پشت سر می گذارد تا درهای ماه را روشن کند، آوای شیپورها خاموش شد و دیگر هیچ زمزمه از سوی سرزمین پریان نیامد از آن پس هر صدایی که شنیده میشد صدای غروبی زمینی بود حتی این صداها هم اندک اندک کاهش یافتند و هنوز هیچ اسب شاخداری نیامده بود در دور دستها سگی پارس کرد صدای چرخهای یک گاری که خسته به خانه باز می گشت، تنها صدا در جاده ای خالی بود کسی در راه باریکی صحبت کرد و سپس سکوت را اصفار باقی گذاشت چرا که گویی واجه ها سکوت حاکم بردشت های ما را می و در این سکوت اوریون در انتظار عصب های شاخداری به مرز می نگریست که هرگز نیامدند و هردم منتظر بود که یکی از آنها از میان شفق به بیرون گام بگذارد اما آمدنش به همان نقطه که تنها دو روز پیش آن پنج اسب شاخدار را یافته بود خردمندانه نبود چون در میان تمامی موجودات اسبهای شاخدار محتادترین آنها هستند و با از دست ندادن دوراندیشی زیباییشان را همواره از چشمهای انسان به دور نگاه میدارند تمام روز در آن سوی دشتهایی که می‌شناسیم میمانند و تنها گاهی به هنگام غروب، هنگامی که همه چیز ساکن است، با احتیاط کامل به این دشت‌ها میآیند و حتی در آن هنگام نیز جرأت کنند از مرزها چندان دور شوند. امکان روبرو شدن با این جانوران برای بار دوم و در همان ای که دو روز پیش با سگها به آنجا آمده بودند و یکیشان را دنبال کرده و کشته بودند، کمتر از آن بود که اوریان می‌پنداشت. اما قلبش سرشار از پیروزی شکارش بود و صحنه این شکار همانند همه چنین صحنه هایی او را به سوی خود فرا خوانده بود و اکنون به مرز خیره و منتظر یکی از موجودات شگرف مانده بود تا در هیکلی عظیم و زیبا مغرورانه از میان آن رنگ شیری مبهم بیرون آید و هیچ اسب شاخداری نیامد و هنگامی که مدت درازی خیره به مرز ایستاد آن مرز شگفت آغاز به فراخواندن او کرد تا جایی که اندیشههایش به سوی نورهای سرگردانش جذب شد و آرزوی چکادهای سرزمین پریان را کرد. و آنانی که در کشزارهای لبه دشت هایی که میشناسیم میزیستند این جاذبه را خوب می و من دانه نگاهشان را از آن شگفتی که با شکوه رنگهایش در نزدیکی و درست پشت خانه هاشان قرار داشت به دور نگاه می داشتند. چون زیبایی در آن بود که در دشتهای ما آن وجود ندارد. و گفته شده است که اگر آن کشتکاران در جوانی به آن نورهای سرگردان پیره می دیگر در دشتهای ما هیچ لذتی برایشان باز نمی ماند. هیچ لذتی در شیارهای ظریف و قهوهی شخم یا در امواج گندمزار و یا در هیچ چیز دیگر ما نمی ماند. از اینجا دور میشد و نزد سرزمین پریان می ماند و همواره تمنای کوهای ناشناخته و مردمی را داشتند که توسط نجات دهنده رستگار نشده بودند. و اکنون همچنان که غروب زمینی ما سپری می شد، بر لبه آن شفق جادویی چیزهای زمینی به تندی از خاطرش گریختند و ناگهان دیگر تنها به سرزمین پریان اهمیت میداد. از میان تمامی مردمی که با دیوه های انسان ها می تنها مادرش را به یاد می آورد و ناگهان گویی شفق به او گفته بود و دریافت که مادرش جادوین بوده و خودش هم از راسته جادوست. و هیچکس این را به او نگفته بود و خودش در آن دم آن را دریافت. سالها در غروبهای بسیاری حیران شده و کوشیده بود حدس بزند مادرش کجا رفته است. در سکوت و تنهایی حدس زده بود هیچکس نمیدانست آن کودک چه فکر می کرد. و اکنون چونین می نبود که پاسخی در هوا معلق است چونین می نبود که مادرش تنها کمی از شفق جادویی که آن که را از سرزمین پریان جدا می کرد دور است سه گام به جلو برداشت و به خود شفق رسید پاهایش دورترین چیزها در دشتهایی که می شناسیم بودند پیش رویش شفق همچون مهی لمیده بود شفقی که گویهای رنگین سمیمانه در آن میرقصیدند. هنگامی که حرکت کرد یکی از سگها تکان خورد گروه سگها سرشان را برگرداندند و به اونه گریستند، ایستاد و دوباره آرام گرفتند کوشید از میان شفق به آن سو بنگرد اما هیچ چیز جز نورهای سرگردانی ندید که از توده شدن شفقهای هزاران روز زمینی پدید میآمدند و با جادو حفظ شده بودند تا آن مرز را بسازند سپس از میان آن شکافش شگرف مادرش را صدا زد در یک سویش زمین به آشیانه انسان‌ها بود و زمان با دقیقه ها و ساعت ها و سال ها اندازه‌گیری می‌شد و در سوی دیگرش سرزمین پریان و شیوه دیگر گذشته زمان قرار داشت دوباره مادرش را صدا زد و گوش داد و با صدایش زد و هیچ فریاد یا زمزمی از سرزمین پریان به گوشش نرسید آنگاه عظمت فاصله ایر که او را از مادرش جدا می کرد، حس کرد و دانست فاصله ای پهناور و تاریک و نیرومند است. همچون فاصله ای که روزگار ما را از روزگاری که جدا می کند یا فاصله ای که بین زندگی روزمره و رؤیا یا بین مردمی که زمین را می کارند و قهرمانان ترانه ها یا بین آنانی که هنوز زنده اند و آنانی وجود دارند که برایشان سوگواری می کنند. و شفق سوسو و جرقه میزد. گویی چون این چیز هواگونهای اصلا سالهای از دست رفته را از زمان جاری که اکنون خانده می جدا نکرده بود آنجا ایستاده بود و پشت سرش در دیر هنگام غروب و درخشش دلپذیر شفق ملایم زمینی فریادهای زمین به خاموشی میگراییدند. و در برابرش کنار چهرش سکوت جرف سرزمین پریان و صدی که آن سکوت را میساخت ساخت با زیبایی شیفتش می‌درخشید و اکنون دیگر به چیزهای زمینی نمیاندیشید تنها به درون آن دیوار شفق خیره شده بود همان گونه که پیشگویان به هنگام سخن گفتن با دانش ممنوع به درون بلورهای ابر گرفته خیره میشوند. انوار کوچک مرز ساخته شده از شفق بخش پریانه خون اوریون و تمامی جادویی را که از مادرش داشت فرا خواندند و وسوسه کردند به مادرش اندیشید که در آسودگی تنهایی ماورای هجوم زمان میزیست به شکوه سرزمین پریان اندیشید که به گونه مبهمی با خاطرات جادویی که از مادرش به او رسیده بود می شناخت دیگر نه فریادهای کوچک غروب زمینی را در پشت سرش می شنید و نه به آن اعتنا می کرد. و به همراه این فریادها، نیازها و شیوه های انسانها، برنامه هایی که داشتند، آنچه برایش رنج می کشیدند و امیدش را داشتند و تمام چیزهای کوچکی که بردباریشان به آنها دست می ترکش کردند. در آگاهی تازهی که در کنار این مرز درخشان به سویش آمده بود که همخون خون جادوست ناگهان خواست از پیروی از زمان رها شود و سرزمین هایی را که برای همیشه تحت سلطه و زیر تازیانه استبداد زمان قرار داشتند، ترک کند. آنها را با کمتر از پنج گام ترک کند و به درون سرزمین های بیزمانی برود که مادرش در سرایی زیبا و حیرت انگیز کنار پدر بزرگش بر تخت مهالودی نشسته بود که تنها ترانه‌ها تصورش را کرده بودند دیگر ارل خانهش نبود دیگر شیوه های انسان ها نبودند دیگر دشت هایشان زیر پایش نبود اینک دیگر چکاد های, های سرزمین پریان برایش به دل پذیری شیروانی های کاهگلی برای کارگران زمینی به هنگام غروب بودند دیگر خانهاش سرزمین افثانه و غیر زمینی بود. بدین ترتیب صد شفق که مدت درازی به آن خیره شده بود، جادویش کرد. این شفق جادوی تر از هر غروب زمینی بود. و کسانی هستند که مدت درازی به آن خیره شدند و اما روی گردانده اما اینان اوریون نیستند. چون هرچند جادو برای افسون کردن چیزهای جهانی نیرومند است، اما این چیزها سنگین و آهسته به افزون پاسخ میدهند در حالی که هر آنچه در خون اوریون از جنس جادو جادویی را که در باروهای سرزمین پریان میدرخشید اجابت میکرد این بارو از نادرترین نورهای سرگردان در هوا و زیباترین درخششهای آفتاب که از میان طوفان دشتهای ما را روشن می‌کند. و از بخار جوی بارهای کوچک و درخشش گلها در محتاب و انتهای رنگین کمانهای ما با تمام زیبایی و جادوشان و بازمانده درخشش غروب به خاطر سپرده شده در اندیشه های ساخته شده بود به درون این افسون گام گذاشت تا چیزهای این جهانی را ترک کند اما تا پایش شفق را لمس کرد سگی که پشت سرش در کنار پرچین نشسته بود کششی به اندامش داد و فریاد کوچکی از نابرد باری کشید که در میان شیوه های انسان ها بیش از همه به نالهی شبیه بود. و اوریون به عادتی قدیمی به شنیدن این صدا سر برگرداند و سگ را دید و برای یکدم به سویش رفت و نوازشش کرد تا با او وداع کند. اما دمی بعد تمامی سگها به دورش حلقه زده و پوزشان را به دستهایش میمالیدند و به چهرش می‌نگریستند و اوریون که در میان سگهای مشتاقش ایستاده بود، اوریون که دمی پیش با اندیشه های شناور بر فراز سرزمین جادویی و در حال پیمودن چکات های افزون شده سرزمین پریان رؤیای افسانه‌ها را می‌دید، ناگهان توسط نیمه زمینیش فراخوانده شد مسئله این نبود که به شکار بیشتر اهمیت میداد، تا به اینکه در سرزمینهای دوست داشتنی و وصنا کردنی پدر بزرگش در کنار مادرش بر فراز آسیب زمان باشد. مسئله این نبود که سگهایش را چنان دوست داشت که نمی توانست تکشان کند، اما پدرانش دورانهای بسیار این شکار را دنبال کرده بودند. همان گونه که نجاد مادرش رها از زمان جادو را دنبال کرده بود. و فراخانی به سوی جادو هنگامی نیرومند بود که به چیزهای جادویی مینگریست و راسته کهان زمینیش نیز به همان اندازه برای فراخانی او به سوی شکار نیرومند بود مرز زیبای شفق تمناهایش را به سوی سرزمین پریان کشیده بود دمی بعد سگهایش او را به سوی دیگر بازگردانده بودند برای هر یک از ما دوری از چنگال عوامل خارجی دشوار است اوریان چند لحظه در میان سگهایش ایستاد و اندیشید، میکوشید را راهش را برگزیند، میکوشید اعثار ای را که بر فراز سبززارها و عظمتهای بیشمار سرزمین پریان شناور بود در یک کفه ترازو، و زمینهای شخم زده قهده ای زیبا و مسیر پرچینهای کوچک زمینی را در کفه دیگر بگذارد اما سگها گردش بودند پوزه‌هاشان را به او میمالیدند ناله میکردند به چشمهایش مینگریستند اگر دوم و پنجه و چشمهای درشت می می‌توانستند، سخن بگویند میگفتند بیا برویم برویم در میان آن قوقا تصمیم گرفتن ممکن نبود نتوانست تصمیم بگیرد و سگها پیروز شدند و اوریون و سگها با هم و از میان دشت هایی که میشناسیم به سوی خانه برگشتند سفر به دنیای پر رمز و راز افثانه ها از غول ها و کتوله ها از جادوگرها سفر به سرتمین جادویی و تلزم شده رفتن به دنیای پریان ماجراجویی در سرزمین زیر دریا همه اینها و بیش از اینها, بیش از اینها. در کانال تلگرامی هزار افسان افثان. داستان های صوتی